3. عشق به خدا قبلا گفتیم که اساس نیاز ما به دوست داشتن از احساس تنهایی سرچشمه میگیرد و همین نیاز ما را وادار میکند تا با تجربه وصل بر استراب جدای خود آییم صورت دینی عشق یعنی آنچه عشق به خدا نامیده میشود، از نظر روانشناسی چیزی جزین نیست عشق به خدا؟ از نیاز بر فایق آمدن بر جدایی و رسیدن به وصل نشعت می‌گیرد. در حقیقت، عشق به خدا نیز دارای همان صفات و جنبه مختلف عشق به انسان است و تا حد زیادی نیز همان تفاوتها را داراست. به طور کلی در تمام ادیانی که پیروانشان به خدا معتقدند، چه آنهایی که چند خدا را می و چه آنها که به خدای یگانه ایمان دارند، خدا، به منزله برترین ارزش و مطلوبترین نیکیست. بنابراین، معنی مشخص خدا بستگی به این دارد که شخص خیر مطلوبتر را چه بداند. از این روی، درک مفهوم خدا باید با تجزیه و تحلیل ساخت شخصیت فردی که خدا را می پرستد آغاز گردد. تا آنجا که ما میدانیم، خصیصه اساسی تکامل نژاد انسان را میتوان رهایی او از طبیعت و از قید و بندهای خون و خاک دانست. در آغاز تاریخ انسان، گرچه پیوند آدمی با طبیعت از هم گسیخته بود، باز او خود را به همان قیدهای نخستین می آویخت، او ایمنی خود را در بازگشت و توسل به همان قیود نخستین میدانست. او هنوز احساس می کرد که با دنیای حیوانات و درختان یکی است، و می تا با حفظ یگانگی خود با دنیای طبیعت به وصل و وحدت یابد. بسیاری از ادیان ابتدایی شاهد این مرحله از تکامل انسان است. حیوانی تبدیل به توتم می شود. آدمیان در بسیاری از مراسم رسمی دینی یا در جنگ صورتک های حیوانات را به چهره می زدند. یا حیوانی را به عنوان خدا می پرستیدند. در مرحله بعد تکامل وقتی که مهارت انسان به سطح پیشوری و مهارت هنری می رسد، به هنگامی که انسان دیگر منحصرن به بخشش های طبیعت وابسته نیست و به میوه های سهل الوصولی که میابد و حیواناتی که شکار می کند وابستگی ندارد مصنوعات خود را تبدیل به خدا می این دوران مرحله پرستش بت‌های گلی، نقره‌ای یا طلایی است. بشر قدرت و مهارت خود را در مصنوعات خود منعکس می‌کند و به گونه بیگانه و جدا از خود شایستگی و آنچه را از آن اوست می‌پرستد. بشر در مرحله بعدی به خدایان خیش شکل انسانی می‌دهد. به نظر میرسد این امر فقط زمانی می تواند اتفاق بیفتد افتد که انسان آگاهی بیشتری نسبت به خود کسب کرده است و به این کشف نائل آمده است که انسان والاترین و شریفترین چیز روی زمین است. در این مرحله که دوران پرستش خدایان انسان نماست ما در دو جهت شاهد رشد و تحول هستیم. یکی به زن یا مرد بودن خدایان اشاره دارد و دیگری درجه بلوغ انسان را تا آن مرحله نشان می دهد. بلوغی که ماهیت خدایان و عشق انسان را به آنان تعیین می کند در وهله نخست از رشد و تحول ادیان مادر سالاری به ادیان پدر سالاری صحبت می کنیم برحسب اکتشافات بزرگ و قاطع باخوزن و مرگان در عواست قرن 19 و با علارقم اعتراضات و مخالفت‌های شدید که از جانب محافل آکادمیک به دست آنان شد، شک نیست که حداقل در بسیاری از فرهنگ‌ها مرحله‌ای از دین مادر سالاری قبل از دین پدر سالاری وجود داشته است. در مرحله مادر سالاری، بالاترین فرد مادر است. او الهه است و در عین حال فرد قدرتمند خانواده و جامعه میباشد. برای درک ماهیت دین مادر سالاری، کافیست مطالبی را که درباره عشق مادرانه گفتیم به خاطر آوریم. اشق مادر بدون قید و شرط می باشد. حافظ همه چیز است و همه را دربر می گیرد. از آنجا که بی قید و شرط است، قابل کنترل یا اکتساب نیست. صرف وجود آن می تواند به معشوق احساس شادمانی دهد، و عدم و فقدان آن احساس گمگشتگی و یعس کامل به وجود میآورد. عشق مادر بر اساس برابری استوار است زیرا او کودکانش را به صرف اینکه های او هستند دوست دارد نه به این علت که آنها خوب، مطیع و برآورنده خواست‌ها و دستورهای اویند همه انسانها برابرند چون همه کودکان یک مادرند چون همه آنها کودکان مادری هستند که زمین نام دارد مرحله بعدی تغییر و تکامل انسان یعنی تنها ای که شناخت کامل و دقیقی از آن داریم و نیازی به حدس و گمان و مدلسازی نداریم مرحله پدر سالاری است در این مرحله، مادر از مرتبه آلیه خود به زیر آمده و پدر در امور دینی و همینطور در جامعه به موجودی ما فوق تبدیل می گردد. طبیعت عشق پدرانه این است که فرمان می‌دهد و قاعد و قانون وضع می کند. عشق او به پسر، بستگی به میزان اطاعت پسر از این فرامین دارد. او آن پسری را بیشتر از همه دوست دارد که بیش از همه شبیه خود اوست. بهتر از همه فرمان می برد و به عنوان وارث دارایی‌های او بهترین جانشینش به حساب می‌آید جامعه پدرسالاری همگام با رشد مالکیت خصوصی تکامل می‌یابد در نتیجه جامعه پدرسالاری مبتنی بر اصول سلسله مراتب طبقاتی است برابری برادران جای خود را به رقابت و کشمکش‌های متقابل می‌دهد خواه ما در فرهنگ های هندی مصری یا یونانی بیاندیشیم و خواه در ادیان یهودی مسیحی یا اسلامی همه جا در وسط نظام پدرسالاری قرار داریم که بر خدایان مسکور و بیشمارش خدایی واحد فرمان میراند و یا خدایان همه بجز یکی یعنی خدای واحد از میان رفته است با وجود این از آنجا که آرزوی عشق مادرانه را نمیتوان از قلب انسان ریشکن کرد تعجبی ندارد که میبینیم چهره محبت آمیز مادر هرگز کاملا از پانتئون معبد خدایان رانده نشده است. در دین یهود، جنبه های مادرانه خدا به خصوص در جریان مختلف عرفان دوباره نمودار میشود. در مذهب کاتولیک، کلیسا و مریم مقدس نشانه و سمبل مادرند. حتی در مذهب پروتستان، با وجودی که شخصیت مادر پنهان باقی مانده ولی به طور کامل محو و نابود نشده است. لوتر اصل اساسی خود را بر این گذاشت که انسان با هیچ کاری نمیتواند به کسب عشق خداوند نائل شود. عشق الهی موهبت است و نگرش مذهبی طلب می کند که به این موهبت ایمان داشته باشیم و خود را در مقابل او خار و ناتوان کنیم. هیچ کار نیکی نمیتواند خدا را تحت تاثیر قرار دهد یا به اصول مذهب کاتولیک خدا را به دوست داشتن ما برانگیزد. در اینجا به خوبی می دید که در آین کاتولیک کارهای نیک بخشی از تصویر پدر سالاری است. یعنی من میتوانم عشق پدری را به وسیله فرمان برداری و برآوردن تقاضاهای پدرم تحصیل کنم. از سوی دیگر تعالیم لوتر علیرغم رغم ظاهر پدر سالارانه کاملا روشن آن حاصل یک انصر مادر سالاری پنهان است عشق مادر قابل تحصیل نیست یا وجود دارد یا ندارد تنها کاری که از دست من برمی آید این است که ایمان داشته باشم همانطور که در مزامیر آمده است تو گذاشتی که من به سینه های مادرم ایمان داشته باشم و خود را به کودکی زبون و ناتوان تبدیل کنم ولی این غرابت ایمان لوتر است که در آن چهره مادر از تصویر ظاهری زدوده شده و پدر جای آن را گرفته است. به جای یقین از عشق مادر، در اینجا مایه اصلی شک شدید و امید علیه امیدوار بودن به عشق بیقید و شرط پدر است. من ناچار بودم در عدیان، تفاوت بین انصر مادر سالاری و پدر سالاری را مورد بحث قرار دهم. نشان دهم که ماهیت عشق خداوند به ترتیب بستگی به اهمیت و تسلط جنبه‌های مادر سالاری و پدر سالاری در دین دارد جنبه پدر سالاری آن مرا وادار می‌سازد که خدا را همچون پدر دوست بدارم من چنین فرض می‌کنم که او عادل است و سختگیر تنبیه می‌کند و پاداش می‌دهد و سرانجام مرا به عنوان پسر محبوب خود برمیگزیند. همانطور طور که خدا ابراهیم و اسرائیل را برگزید و همانطور که خدا قوم محبوب خود را انتخاب می کند. در جنبه مادر سالاری دین من خدا را همانند مادری جهان شمول تصور می کنم. من به عشق او ایمان دارم و صرف نظر از اینکه فقیر یا ضعیفم و بی توجه به اینکه مرتکب گناهی شده هم مرا دوست خواهد داشت. و هیچ کدام از کودکانش را به من ترجیح نخواهد داد و هرچه به سرم بیاید او به دادم خواهد رسید نجاتم خواهد داد و سرانجام مرا خواهد بخشید لزومی به تحکید نیست که عشق من به خدا و عشق خدا نسبت به من جدای پذیر است اگر خدا پدر است مرا همانند پسرش دوست می دارد و من نیز او را چون پدری دوست خواهم داشت اگر خدا مادر است همین واقعیت عشق من و او را تعیین می کند. اما تفاوت بین جنبه های مادران و پدرانه عشق به خدا تنها یکی از عواملی است که میتوانیم به وسیله آن طبیعت عشق خدا را تعیین کنیم. عامل دیگر، میزان بلوغ فرد و مفهوم او از خدا و عشق او به خدا می باشد. چون نوع بشر، ضمن تکامل از جامعه مادر به جامعه پدر سالاری و دین پدر سالاری گرایید، می توانیم تکامل عشق بالغ را به طور عمده در توسعه و تکامل دین پدر سالاری دنبال کنیم. در اوایل این دوره تکاملی به خدایی مستبد و حسود برمیخوریم که انسان آفریده خود را مایه خود میداند و مختار است که با او هرچه می میخواهد بکند. در این مرحله از دین است که انسان را از بهشت بیرون میراند تا مبادا از میوه درخت دانش بخورد و خود خدایی بشود. این مرحله است که در آن خدا تصمیم میگیرد تا نوع بشر را با جاری ساختن سیل منهدم کند. زیرا که هیچیک از آنها به استثنای پسر محبوبش نوح رضایت او را فراهم نمی کنند. این مرحله ایست که در آن خدا از ابراهیم تقاضا می کند تا یگان پسر محبوبش اسماعیل را قربانی کند تا بدین وسیله که نهایت درجه اطاعت است اشقش را به خدا اثبات نماید اما همزمان با این جریان مرحله دیگری آغاز می شود. خدا با نوح پیمانی میبندد و به او قول می دهد که دیگر هرگز نوع بشر را منهدم نکند پیمانی که خود او را نیز پایبند و مقید میسازد او نه تنها به وسیله قول خود مقید می‌شود، بلکه با اصل اساسی خود یعنی ادالت نیز مقید است به همین دلیل خدا مجبور است تسلیم تقاضای ابراهیم شود و شهر صدوم را رهایی بخشد به شرط آنکه در آنجا حداقل ده مرد عادل بیابد اما این تکامل باز هم ادامه یابد و خدا را از صورت یک رئیس قبیله مستبد در میابرد و به پدری مهربان تبدیل می کند که خود به اصولی که به دست خیش وز کرده است مقید است. پس از این هم فراتر رفته و چهره خدا را در مقام یک پدر به سمبل اصول او تبدیل می کند. اصل ادالت حقیقت و عشق خداوند حقیقت است. خداوند عدالت است. در روند این تکامل خدا غالب فردی، انسانی و پدرانه خود را از دست می دهد، بلکه در ماورای کسرت کسرات ها سمبل اصل وحدت است. تصویر گلی است که از دانهی معنوی در ذات بشر خواهد روید. بر خدا نمی توان نامی نهاد. نام همیشه به چیزی یا شخصی یا هر آنچه فناپذیر است اشاره می کند. اگر خدا نه شخص است و نه چگونه میتوان نامی برونه نهاد؟ بر جستترین نمونه این تغییر در داستان کتاب مقدس در مورد ظهور خدا بر موسی به چشم میخورد. آنجا که موسی به خداوند میگوید، ابرانیان باور نمی کنند که من فرستاده تو هستم، مگر اینکه بتوانم نام تو را به آنها بگویم، بت چگونه می توانستند خدای بینام را درک کنند چون جوهر بت در این است که اسمی داشته باشد خداوند تسلیم می شود او به موسا اسمش را من در حال شدنم به آنچه در حال شدنم می گوید من در حال شدنم نام من است این در حال شدنم به این معناست که خدا نامتناهی است انسان نیست یک هستی نیست بهترین تفسیر این جمله است بگو به آنها که نام من بینامی است اینکه ساختن تصویر خدا من شده است و اینکه نباید نام او را بیهوده بر زبان آورد و سرانجام منع اکامل بر زبان راندن نام او همه به این منظور بودند که بشر عقیده پدر بودن یا شخص بودن خدا را کنار بگذارد با رشد بیشتر الهیات، این فکر نیز پیشتر می رود و به یک اصل تبدیل می شود که حاکی از این است. نباید به خداوند صفتی دنیوی و مادی داد. گفتن اینکه که خدا عاقل نیرومند و نیکوست، باز این معنا را میرساند رساند که او شخص است. بیشترین این کاری که ما می توانیم بکنیم، این است که بگوییم خدا فلان و بهمان نیست. صفات سلبی به او نسبت دهیم. و اثبات کنیم که او محدود نیست، نامهربان نیست، ظالم نیست. هرچه بیشتر بدانیم که خدا چه چیزها نیست، شناخت ما درباره او بیشتر می شود. عقیده یکتا در سیر تکاملی بعدی خود به یک نتیجه غایی میرسد. نام خدا هرگز نباید بر زبان رانده شود و نباید هرگز درباره او سخن گفت. بدین ترتیب خدا در الهیات یک تا پرستی به آنچه بلقوه هست تبدیل می شود. آن یگانه بینام و غیرقابل توصیف که وحدت اساسی جهان محسوس است، اساس هستی است. خدا به حقیقت عشق عدالت تبدیل می شود تا آنجا که من انسانم خدا منم. آشکار است این تحول از مرحله خدایان دارای صورتهای انسانی تا به مرحله اصل یک تا پرستی محض در ماهیت عشق به خدا تغییرات زیادی به وجود می‌آورد. خدای ابراهیم را می‌توان دوست داشت یا همچون پدر از او ترسید. گاهی بخشندگی و گاه خشمش غالب است تا آنجا که خدا پدر است من فرزند او محسوب می‌شوم. من هنوز به طور کامل این خیال خام برای دست یافتن به علم کامل و قدرت مطلق را از سر بیرون نکردم. من هنوز این واقع بینی را پیدا نکردم که به عنوان یک انسان، محدودیت جهالت و ناتوانی‌های خود را تشخیص دهم. هنوز مانند یک بچه ادعا می کنم که باید پدری وجود داشته باشد که مرا نجات دهد. مراقب من باشد و تنبیهم کند. پدری که هرگاه فرمان بردارم دوستم بدارد پدری که از تحسین های من به خود ببالد و از نافرمانی های من خشم بگیرد کاملا آشکار است که در تکامل شخصی خود هنوز بر این حالت کودکانه فائق نیامدهاند. بنابراین ایمان بیشتر مردم به خدا به منزله ایمان به پدری یاری دهنده است که توهمی کودکانه بیش نیست علا رغم این حقیقت که برخی از آموزگاران نوع بشر و اقلیتی از مردم این مفهوم دین را پشت سر گذاشتند، هنوز مفهوم مورد بحث بر فکر اکثریت عظیمی از آدمیان غالب است بنابراین، تا جایی که چنین است، انتقاد از اندیشه خدا، بدانگونه که فروید توضیح داده است، کاملاً صحیح است ولی اشتباه او در اینجا بود که او جنبه دیگر عقیده یکتا و هسته واقعی آن را نادیده گرفت که منطق درونی آن دقیقا این مفهوم خدا را رد می کند. انسان واقعا متدین اگر پیرو جوهر عقیده یکتا باشد هرگز برای چیزی دعا نمی کند و از خدا انتظار چیزی ندارد اشقه او به خدا مانند مهر کودک به پدر یا مادرش نیست او تا به آن حد فروتنی پیدا می کند که قبول می کند، هیچ چیز درباره خدا نمی داند. خدا برای او مظهر است که انسان در مراحل اولیه تحول خود در وجود او جامعیتی را بیان میکرد کرد که بشر همباره برای دستیابی به آن میکوشید یعنی قلمرو معنویت، عشق، حقیقت و عدالت. او به اصولی که خدا نماینده آنهاست ایمان دارد. اندیشه او حقیقت زندگیش اشق عشق و عدالت است و تمامی زندگی خود را فقط تا آنجا ارزشمند میداند که برای شکوفا ساختن هرچه بیشتر نیروهای انسانی خود به او فرصت دهد به منزله تنها واقعیت مهم به منزله تنها غایت مطلوب و اینکه او سرانجام درباره خدا سخن نمیگوید حتی نام او را بر زبان نمی راند. بنابراین برای او عشق به خدا اگر لازم باشد این کلمه را بر زبان بیاورد به معنای دستیابی به توانایی کامل برای دوست داشتن و تحقق بخشیدن به چیزی است که خدا در نفس او مظهر آن است از این دیدگاه نتیجه منطقی تفکر یک پرستی، نفی همه الهیات و همه معلومات درباره خداست با وجود این بین چنین نظر رادیکالی که الهیات را انکار می کند، با اندیشه چون افکار بودایی و تاتویی که اصولاً بر خداپرستی مبتنی نیستند، تفاوتی باقی می ماند. در همه نظام های خداپرستی، حتی در نظام ارفانی که فاقد الهیات است، تصوری از واقعیات دنیای روحانی وجود دارد که فائق بر انسان است، و به قوای روحانی آدمی و تلاش او جهت رستگاری و تولد درونی معنی و اعتبار میبخشد. در نظام های فاقد الهیات، دنیایی روحانی در خارج از انسان و مافق او وجود ندارد. دنیای عشق، عقل و عدالت، به عنوان یک واقعیت فقط تا آنجا و به خاطر آن وجود دارد که انسان توانسته است این نیروها را در روند تکاملی خیش در خود رشد و گسترش دهد بنابراین زندگی معنایی ندارد جز معنایی که انسان به آن می دهد. بشر کاملا تنهاست مگر اینکه به دیگران یاری دهد اکنون که از عشق به خدا صحبت شد باید روشن کنم که نویسنده خود بر پایه مفاهیم خداپرستی فکر نمی کند. در نظر من مفهوم خدا فقط یک مفهوم مشروط تاریخی است که انسان به وسیله آن تجربه هایی را که از قوای عالی تر خویشتن دارد و آرزوی خود را برای وصول به حقیقت و وحدت در مقطع معینی از تاریخ بیان کرده است. ولی من همچنین معتقدم که نتایج یکتابپستی تعصب آمیز و علاقه قایی نظام های به واقعیت معنوی، دو نظرگاه هستند که با وجود تفاوت نیازی برای مبارزه با یکدیگر ندارند. بدین ترتیب، در اینجا جنبه دیگری از مسئله عشق به خدا پیش می آید که به منظور درک عمق پیچیدگی موضوع باید آن را مورد بحث قرار دهیم. مقصود من، اختلاف اساسی گرایش دینی شرق یعنی چین و هند و غرب است این تفاوت را می توان در قالب مفاهیم منطقی بیان کرد جهان غرب از زمان ارسطو اصول منطقی فلسفی ارسطو را دنبال کرده است این منطق مبتنی بر قانون این همانی است که میگوید ای همان ای است و بر قانون تضاد که میگوید ای نمی تواند غیر ای باشد و نیز بر قانون رفع نقیزین که میگوید ای نمیتواند تواند ای و غیر ای باشد و نمیتواند به ای و نغیر ای تبدیل شود ارسطو موضع خود را در جمله زیل با وضوح تمام توضیح می دهد امکان ندارد که یک شی در آن واحد متعلق به خود آن شی باشد و متعلق به خود آن شی نباشد هر تمایز دیگری که ما برای رفع ایراد های دیالکتیکی اضافه کنیم مجاز است. پس این از مسلمترین تمام اصل هاست. این قضیه منطق منطقه چنان امیق در شیوه های تفکر ما رسوخ سوخ کرده است که به نظر کاملا طبیعی و بدیهی می نماید. در صورتی که اگر بگوییم که ایکس همان است و نه ای، گفته چرندی به نظر می آید. البته این قضیه به موضوع ایکس در زمان معین اشاره می کند، نه به ایکس فعلی یا ایکس بعدی، یا منظور یک جنبه خاص ایکس در مقابل جنبه دیگر آن نیست. در مقابل منطقه عرستوی منطقه دیگری هست که می توان آن را منطقه متضاد نامید، که در این منطق فرض بر این است که ای و غیر ای، هر دو به عنوان محمول های ایکس منافی یکدیگر نیستند. منطق متضاد، وجه مسلط شیوه تفکر چینی و هندی، فلسفه هراکلیت بود و بعدها تحت نام دیالکتیک به فلسفه هگل و مارکس تبدیل شد. اصل کلی منطق متضاد را لاوتسه به روشنی بیان کرده است. کلماتی که کاملا درستند، متضاد به نظر می رسند. و چوانگتسو می گوید، آنچه یکی یکیست،, یکیست، و آنچه یکی نیست، نیز، یکیست، این قضایا در منطق متضاد مثبت هستند. این هست و نیست. قضیه دیگر منفی است. این نه این است و نه آن. شیوه اندیشه نخست را در تفکر تاوی و هراکلیت و بعد در دیالکتیک هگل میتوان دید. شیوه دوم به کرات در فلسفه هند دیده میشود. گرچه بحث مفصل راجع به تفاوت منطق عرستو و منطق متضاد از گنجایش این کتاب خارج است در اینجا فقط به ذکر چند مثال اکتفا شود تا اصل آنها بیشتر قابل فهم شود منطق متضاد در تفکر غربی برای اولین بار در فلسفه هراکلیت دیده می‌شود او میگوید که کشمکش تضاد بین دو متضاد اساس عالم وجود است او می گوید مردم نمیفهمند که عالم وجود با وجود تضاد درون خود با خود یکی است. هماهنگی متظاد ماننده مزراب و چنگ است یا به بیان واضحتر، ما دوبار در یک رودخانه شنا میکنیم، ولی رودخانه همان که بود نیست. ما خودمان هستیم و نیستیم. یا یک چیز واحد خود را به صورت زنده و مرده بیدار و خواب، جوان و پیر متجلی می کند در فلسفه لاوتسه همین فکر به صورت شاعرانه‌تری بیان شده است گفته زیر نمونه خوبی است که وجه مشخصه تفکر متضاد تاویسم را نشان می‌دهد جاذبه ریشه سبکی و سکون فرمانروای حرکت است یا تا او در جریان عادی زندگی خود کاری انجام نمی‌دهد در نتیجه کاری نیست که او انجام ندهد. یا حرفهای مرا به آسانی می شود فهمید و به آسانی عملی ساخت ولی در دنیا هیچ کس نیست که بتواند آنها را بفهمد و به آنها عمل کند. در طرز تفکر طئی مانند شیوه تفکر هندی و سقراتی بالاترین مرحله که فکر به آن میرسد این است که بدانیم هیچ نمیدانیم. و با وجود این فکر کنیم که نمیدانیم بالاترین مرحله وصول است ندانستن و با وجود این فکر کنیم که میدانیم بیماری است فقط در پیروه این فلسفه است که عالیترین خدا را نمیتوان نامی نهاد واقعیت نمایی و آن واحد نمایی در کلمه و فکر نمی گنجد همچنان که لاوتسه گفته است آن تاویی را که میتوان لگت مال کرد تا اوی پایدار و لایت غیر نیست. نامی که میتواند نامیده شود نامی لایزال و لایت غیر نیست یا به بیان دیگر ما نگاهش میکنیم و آن را نمی بینیم و ما آن را ثابت مینامیم. ما به آن گوش می دهیم و ما آن را نمی شنویم و آن را ناشنیدنی می نامیم ما سعی می کنیم آن را درک کنیم و درکش نمی کنیم و ما آن را ظریف می نامیم با این صفت مشخص آن را نمی توان وصف کرد. از این جهت ما هرسه را با هم میآمیزیم و یگانه ای را به دست میآوریم. باز به بیان دیگر، آنکه تا او را میشناسد رغبتی ندارد که درباره او صحبت کند، آنکه در هر حال آماده است درباره او سخن بگوید او را نمیشناسد. نکته مهم در فلسفه برهمایی ارتباط بین کسرت یعنی پدیده ها و وحدت یعنی برهمان است. ولی فلسفه متضاد چین و هند را نباید با نظریه سنویت یا دوالیسم اشتباه کرد. هماهنگی یعنی وحدت در وضع متضادی که خود از آن ناشی می‌شود وجود دارد. تفکر برهمایی از همان ابتدا بر محور تضاد همزمان زدین و در عین حال یک قوا و صور ظاهر جهان پدیده ها دور میزد. نیروی قایی چه در جهان و چه در انسان هم از عالم ادراک و هم از عالم احساس فراتر می بنابر بنابراین نه این است و نه این چونین. اما به گفته زیمر هیچ تضادی بین واقعی و غیرواقعی در این درک غیر تنوس وجود ندارد متفکران برهمایی در جستجوی وحدت پنهان در پشت کسرت به این نتیجه میرسند که این دو قطب متضادی که درک می شود انعکاسی از ماهیت اشیاء نیستند بلکه انعکاسی از ذهن ادراک کننده هستند فکر ادراک کننده اگر بخواهد به واقعیت حقیقی برسد، باید از خود فراتر رود. تزاد، مقوله ای از ذهن انسان است و فی نفسه، انصری از واقعیت نیست. در ریگودا، این اصل بدین ترتیب بیان شده است که من هر دو هم. نیروی زندگی و ماده زندگی، هر دو در یک زمان. نتیجه غایی این عقیده که تفکر تنها از راه تزاد می تواند ادراک کند، در فلسفه ودان به نتیجه شدیدتر و محکمتری رسیده است که فرض می کند تفکر با تمام ریزکاری هایش فقط افق نامحسوس تری از جهالت است. در حقیقت نامحسوس ترین وسیله فریب مایا است. منطق متزاد تأثیری مهم در مفهوم خدا دارد. چون که خدا مظهر واقعیت قایی است و چون بشر واقعیت را فقط در تضاد درک می کند، هیچ تعریف مثبتی از خدا نمی توان ارائه داد. در ودانتها، فکر خدا به عنوان قادر مطلق و دانای مطلق صورت قایی جهالت است. در اینجا ارتباط عدم مطلق مایستر کارت را با بینامی تا او و با عبارت نام بینام خود را بر موسا آشکار کرد می بینیم. انسان فقط نفی را میشناسد و هرگز نمیتواند مقام واقعیت غایی را درک کند. در این حال انسان نمیتواند بداند خدا چیست، حتی اگر به خوبی بداند که خدا چه نیست. به این صورت، ذهن آدمی که هیچ چیز اقنایش نکرده برای وصول به عالیترین ترین نیکیها فریاد می با به عقیده مایستر کارت، خدا نفی همه نفی هاست و این کار همه این هر آفریده یک نفی در خود دارد، وجود هر کس انکار می کند که او جز خود کس دیگری نیست، در نتیجه گیری های بعد است که خدا به عقیده کارت عدم مطلق جلوه می کند، درست همانطور که واقعیت غایی برای کابالا، انصف و یگانه نامتناهی را دارد. تفاوت منطق دو و منطق تزاد را بدین جهت مورد بحث قرار دادیم که زمینه برای نشان دادن تفاوت مهمی که در مفهوم عشق به خدا وجود دارد آماده شود آموزگاران منطق متضاد میگویند که انسان واقعیت را فقط در تضاد میتواند ادراک کند و هرگز در عالم تفکر نمیتواند به درک واقعیت قایی وحدت یعنی خود واحد دست یابد این امر به نتیجه گیری مهمی منجر می شود، مبنی بر اینکه انسان به عنوان هدف غایی در عالم تفکر به دنبال یافتن پاسخ نباشد. تفکر فقط به این مرحله از دانش می رسد که بگوید که قادر نیست پاسخ غایی را به ما بدهد. دنیای فکر همواره در بند تزاد باقی می ماند. یگان راه درک جهان در نهایت نه تفکر بلکه عمل و تجربه یگانگی است، بدین ترتیب منطق متضاد ما را به این نتیجه میرساند که عشق به خدا شناخت او در تفکر یا در تفکر عشق به خدا نیست بلکه در تجربه یگانگی با خداست این امر روش درست زندگی کردن را به ما نشان می‌دهد در سراسر زندگی هر عمل ناچیز یا مهم وقف شناخت خدا می گردد، اما شناخت نه از راه تفکر درست بلکه از راه عمل درست این موضوع را میتوان به روشنی در ادیان شرقی مشاهده کرد در دین برهمایی همانند بودایی و تاوی هدف قایی دین اعتقاد صحیح نیست بلکه عمل صحیح است عین همین تاکید را نیز در دین یهود مشاهده میکنیم در سنت یهود تفرقه عقیدتی تقریبا هیچگاه مشاهده نشده است تنها استثناء بزرگ اختلاف فریسیان و صدوقیان بوده است که اصولا اختلاف عقیده دو طبقه متضاد اجتماعی است تکیه دین یهود بخصوص از آغاز اصر ما بر شیوه درست زندگی کردن و هالاچا بوده است در تاریخ جدید همین اصل در افکار اسپینوزا مارکس و فروید بیان شده است در فلسفه اسپینوزا، تکیه موضوع از اعتقاد درست به داشتن زندگی درست منتقل می شود. مارکس نیز همین را بیان می کند وقتی که می گوید فلسفه جهان را به طرق گوناگون تفسیر کردند. وظیفه ما تغییر آن است. منطق متزاد فروید او را به روان درمانی یعنی شناخت هرچه امیختر انسان از خیش رهنمون شد. از دیدگاه منطق متزاد، تکیه بر عمل است نه تفکر این نگرش نتایج چندی به دنبال می آورد نتیجه نخست آن مدارا و بردباری در مقابل ادیان دیگر است که به روشنی در تکامل ادیان چین و هند مشاهده می شود اگر تفکر صحیح حقیقت غایی نیست و راه رستگاری به شمار نمی آید، پس دلیلی ندارد با کسانی که در عالم فکر به نتیجه گیری های متفاوتی رسیده‌اند جنگ و ستیز داشت. این نمودارا با زیبایی خاصی در داستان آن چند نفر که از ایشان خواسته شده بود فیلی را در تاریکی توصیف کنند، بیان شده است. یکی از آنها که خورتوم فیل را لمس کرده بود می‌گوید این جانور شبیه به لوله ی آب است. دیگری که گوشش را لمس کرده بود می‌گوید این جانور مثل باد بزن است و سومی که به پاهای آن دست کشیده بود میگوید این حیوان شبیه به ستون است سانیان هدف دیدگاه منطقه متضاد پیش از آنکه متوجه گسترش عقاید جزمی از یک طرف و علم از طرف دیگر باشد بیشتر تغییر انسان است از دیدگاه هندیان چینیها و عرفا وظیفه دینی انسان نه تفکر درست بلکه عمل صحیح و صالح است و یا یکی شدن با آن یگانه از راه تفکر متمرکز. بدنه اصلی شیوه تفکر غربی درست خلاف این است چون مردم انتظار داشتند حقیقت غایی را در تفکر درست بیابند بیشتر روی تفکر تاکید میشد گرچه عمل درست نیز مهم به حساب می آمد. این امر در جریان تکامل مذهب منجر به شکل گرفتن عقاید جزمی بسیار، جدل‌های بیپایان درباره تنظیم این عقاید و عدم مدارا با بی ایمانان، رافضی‌ها و بدعتگزاران گردید. این روش همچنین مسئله اعتقاد به خدا را به عنوان هدف اصلی دین اهمیت بخشید. البته این نه به معنای آن بود که زندگی درست مورد توجه قرار نداشت. اما شخصی که معتقد به خدا بود، حتی اگر با اصول خدا زندگی نمی کرد، خود را از فردی که با اصول خدا زندگی می کرد، اما به او اعتقاد نداشت، برتر می دانست. تکیه بر تفکر نتیجه دیگر هم دارد که از نظر تاریخی بسیار مهم است. این عقیده که انسان می تواند حقیقت را در تفکر پیدا کند نه تنها منجر به پیدایش اصول جزمی شد بلکه علم را نیز به وجود آورد. در تفکر علمی تنها اندیشه درست اهمیت دارد چه از جنبه صداقت فکری و چه از جنبه بکار بستن تفکر علمی در عمل یعنی در تکنیک. به طور خلاصه تفکر متزاد. به مدارا در مقابل مذاهب دیگر و کوشش برای دگرگونی خود راهنمون گشت دیدگاه ارسطویی به پیدایش عقاید جزمی و علم کلیسای کاتولیک و کشف انرژی اتمی منجر شد عواقب تفاوت این دو دیدگاه را درباره مسئله عشق به خدا به اشاره بیان کردیم در اینجا فقط لازم است آن را جمع و خلاصه کنیم در نظامهای دینی مسلط جهان غرب، عشق به خدا اساسا با اعتقاد به خدا، اعتقاد به وجود خدا، اعتقاد به ادالت الهی و عشق الهی یکیست. عشق به خدا ضرورتاً یک تجربه فکری به شمار می رود. در ادیان شرق و عرفان، عشق به خدا احساسی شدید و مشتاقانه از تجربه یگانگی و وصل است. که به طور ناگسستنی با تجلی این عشق در همه اعمال زندگی پیوند دارد مایستر کارت این نکته را به اساسی ترین و رادیکال ترین شکل بیان می کند بنابراین اگر من به خدا تبدیل شوم و او مرا با خود یکی سازد آنگاه با زندگی در خدا اختلاف و تمایزی بین ما نمی ماند گمان می که خدا را خواهند دید آن هم به طریقی که گویی خدا در آن طرف ایستاده و آنان در این طرف ولی حقیقت چنین نیست خدا و من ما هر دو یکی هستیم از راه شناختن من او را به درون خود می آورم و با عشق ورزیدن به او در او حلول می کنم اکنون می به یک همانندی بسیار مهم که بین عشق به پدر و مادر و عشق به خدا وجود دارد بازگردیم دلبستگی کودک در این جهان با مادر به منزله زمینه همه عالم هستی آغاز می شود. او ناتوان است و به عشق همه جانبه مادر نیازمند است. سپس به پدر به عنوان کانون جدید محبت خیش روی می آورد. پدری که چراغ راهنمای تفکر و عمل است. در این مرحله نیاز به کسب تمجید و تحسین و پرهیز از ناخرسند ساختن پدر در او برانگیخته می شود. او در مرحله بلوغ کامل خود را از شخص مادر و پدر به عنوان نیروهای حمایت کننده و فرماندهنده آزاد می سازد. او دیگر اصول مادرانه و پدرانه را در خود بازسازی کرده است. او حالا پدر و مادر خیش است. او پدر و مادر است. در تاریخ نسل بشر ما همین سیر تکاملی را می بینیم و می‌توانیم پیش بینی کنیم. در آغاز عشق به خدا به صورت وابستگی آجزانه به الهه مادر و سپس وابستگی تابعانه از خدایی پدرمنش تا به مرحله بلوغ که خدا دیگر یک قدرت بیرونی نیست و انسان اصول عشق و ادالت را در درون خیش پرورده و با او یکی شده است و سرانجام، هنگامی که از خدا به زبانی شاعرانه و تمثیلی حرف می زند. با توجه به ملاحظات فوق، به این نتیجه می رسیم که عشق به خدا را نمی توان از عشق به پدر و مادر جدا ساخت. اگر شخص خود را از دلبستگی دردمندانه و نادرست به مادر، قبیله و ملت رهایی نبخشد، اگر به وابستگی بچگانه خود به پدر یا هر قدرت پاداش و کیفردهنده ادامه دهد، هرگز نمیتواند به عشق کامل که عشق به خداست دست پیدا کند، در نتیجه دین او همان دین مراحل ابتدایی تکامل انسان است که در آن خدا یا مادریست که همه جانبه از او حمایت می کند یا پدریست پاداش و کیفردهنده. در ادیان معاصر همه این مراحل یعنی از نخستین و ابتدایی ترین تا عالیترین ترین صورت آنها هنوز حضور دارند. کلمه خدا هم به رئیس قبیله دلالت می کند و هم بر عدم مطلق. به همین ترتیب، هر فرد در درون خود و در وجدان خیش، همانطور که فروید نشان داده است، کلیه این مراحل را از ناتوانی کودکی تا فرجام حفظ می کند. مسئله این است که او تا چه حدی رشد کرده است؟ یک موضوع کاملا مسلم است. ماهیت عشق آدمی به خدا هم عشق او به انسان است. از این گذشته، کیفیت واقعی عشق او به خدا و انسان اغلب ناآگاهانه است که زیر فکر کاملتری درباره کیفیت این عشق پنهان شده و به صورتی اقلانی درآمده است. به علاوه، عشق به انسان، ضمن آنکه مستقیما در روابط شخص با خانوادهاش مستطر است در تحلیل نهایی توسط ساخت جامعه که در آن زندگی می کند تعیین می شود اگر ساختمان جامعه مبتنی بر تسلیم و تابعیت در برابر قدرت باشد، چه قدرت آشکار و اوریان و چه قدرت بینام و بی چهره افکار عمومی و افکار موجود در کوچه و بازار، عقیده فرد نسبت به خدا ناگزیر و دور از مفهوم تکامل یافته آن خواهد بود، که ریشه های آن را باید در تاریخ ادیان یکتا پرستی جستجو کرد.